افسان افزان از گروه جوان و فرهنگ خداوند مهرافرین سلام افثانه چیزی فراتر از خیال بافی یا انعکاس سنت های گذشتن بیش از هر چیز باستاب رؤیاهای کسانیان که اونها رو پرداختند گفتن یا شنیدن رؤیاهای از داشتن آزادی، زیبایی، سلح آرامش و در نهایت زندگی سرشار از خوبی ها و خوشیها. این بار در برامه هزار افسان، افسانه ایرانی بمانی و اسکندر رو براتون انتخاب کردیم برگرفته از کتاب گل به سنو برچه کرد، تعلیف، و گردآوری زندگیات سید اول انجوی شیرازی در روزگاران قدیم زن و شوهری زندگی می‌کردند که از داشتن فرزند محروم بودند و همیشه آرزو می‌کردند که خداوند به فرزندی فرزندیت عطا اونا نصر کرده بودن که اگه روزی صاحب فرزندی شدن نهری از روغن و نهری از شیر گنگور راه بندزن تا مردم هر اندازه که نیاز دارن از اون استفاده کنن بالاخره آرزوی این زن و شوهر برآورده شد و خداوند به اونها دختری زیبا عطا کرد اونا اسم دخترشون رو گذاشتن بمانی و همونطور که نسل کرده بودن نهر روغن و شیره ی انگور به راه انداختند مردم هرچی میخواستن روغن و شیرهٔ انگور بردن تا اینکه پیرزنی زنی از راه دوری اومد و بر سر نهر روغن نشست و تهموندهی ها رو جمع کرد و توی ظرفی ریخت که با خودش ببره از غذا بهمانی که همون دختر باشه اناری رو که با اون بازی میکرد از دستش لیس خورد و توی ظرف روغن پیرزن افتاد و روغناش ریخت روی زمین. پیرزن که از این پیشامد خیلی ناراحت و بستدار شده بود رو کرد به بمانی و گفت من تو رو نمیکنم نمی اما امیدوارم که گرفتار اسکندر بشی دخترک که نمیدونسته اسکندر کیه و اصلا چیه؟ از همون ساعت که این حرف رو از دهن پیرزن شنیده بود شروع کرد به گریه زاری که من اسکندر میخوام من اسکندر میخوام. پدر که طاقت دیدن ااش های دختر یکلونش رو نداشت به زنش گفت ای زن کول بار منو ببند و مقداری آب و غذا برام بذار میخوام برم و اسکندر رو برای دخترم پیدا کنم زن هم که طاقت ناراحتی و گیوزاری دخترش رو نداشت فورا کول بار سفر همسرش رو آماده کرد مرد روانه شد سه روز و سه شب راه رفت تا به قصر باشکوه اسکندر رسید و به غلامهای اسکندر گفت اجازه بدیم به نزد اسکندر برم مشکلی دارم که باید با خودشون در میون بذارم غلامها گفتن چه مشکلی مرد گفت یه مشکل شخصیه و فقط به دست خود اسکندر حل میشه یکی از غلام های اسکندر نزد اسکندر رفت و اجازه ملاقات برای مرد گرفت اسکندر هم دستور داد مرد رو به داخل قصد هدایت کنند مرد که وارد شد اسکندر نگاهی به سرطاب های اون انداخت و گفت شنیدن مشکلی داری که فقط به دست من حل میشه درسته؟ مرد فورا جواب داد بله غربان بله بله درسته اسکندر سری تکون داد و پرسید خوب بگو چه مشکلی داری مرد گفت که چطوری نزل کرده و صاحب دختری شده و حالا دخترش اونو میخواد اسکندر وقتی حرفهای مرد رو شنید حولهای به پیرمرد داده و گفت ای مرد بیا بیا این حوله رو بگیر و وقتی به خونت رسیدی یه روز چهارشنبه حوله رو توی آبتر تر کن و اونو توی درگاه حیات خونت فشار بده تا آبش اونجا بریزه بعد خونت میشه یک قصر بلند اون وقت هوا طوفانی میشه و وقتی صدای رعد و برق بلند شد دخترت رو حاضر کن تا اونو پیش من بیارن اما مواثب باش مواثب باش کسی از این موضوع خبردار نشه مرد از اسکندر خداحافظی کرد و از قصر بیرون مونه. وقتی به خونش رسید ماجرای ملاقاتش رو با اسکندر برای زنش تعریف کرد از بخت بد همون دم که در حال تعریف کردن ماجرا بود دختر مرد ماهیگیری که در همسایگیشون زندگی میکرد از پشت در حرفای مرد رو شنید و در یک زمان مناسب که خونه اونا رو خالی دید حوله رو دزدید و اونچه رو که از زبان پیر شنیده بود به کار بست و همونطوری که اسکندر گفته بود صدای رعد و یه برق بلند شد و طوفانی سر گرفت و دختر ماهیگیر رو به بجای بمانی برداشتند و بردند بمانی که دید به جای اون دختر ماهیگیر رو بردند با گریه و زاری به دنبال اونا برافتاد افتاد رفت و رفت و رفت تا در میون بیابون با گرگ یک گرسنه برخورد کرد گرگ بمانی رو خورد و فقط یه دستش که النگوی طلایی در اون می درخشید در زیر خاک باقی موند. مدتی گذشت. از غذا روزی اسکندر برای شکار گزارش به همون بیابون افتاد. از دور درخشیدن چیزی نظرش رو جلب کرد. اسکندر وقتی جلوتر رفت دست قشنگی رو دید که الانگوی روی اون دست می درخشه. بی اختیار از اون دست خوشش اومد و اونو با خودش به قصر را برد یه روز زن اسکندر که همون دختر ماهیگیر باشه دست رو دید و فهمید که دست دست بمانیه فورا دست رو توی نهر آبی انداخت آب هم دست رو با خودش برد دست تبدیل به یه درخت سیبی شد پر از مار و اقرب که هیچ کس نمیتونست از میوه اون بخوره مگر اسکندر زن اسکندر وقتی از این ماجرا خبردار شد دستور داد تا نوکرها درخت سیب رو بریدن و تو آب انداختن این بار هم جریان آب درخت رو برد به یه جزیره و اونجا پر شد از درخت ها و یه رنگارنگ زن بدجنس اسکندر این بار به مردم گفت آهای مردم هرچی میخواین از میبه های این درخت ها و ببرین و مردم هم در عرض چند دقیقه تمام میبه های روی درختها رو چیدن و فقط موند پیر زنی که روزی به بمانی گفته بود امیدوارم روزی گرفتار اسکندر بشی پیرزن که از میوه‌های درخت ها بی‌نصیب مونده بود نگاهی به اطراف انداخت اما چیزی برای خوردن پیدا نکرد. داشت نومید میشد که چشمش به خربوزه افتاد که یک گوشه افتاده بود. پیرزن با خوشحالی گفت خدای روش، بالاخره این خربوز هم من شد. خدای روش. و خم شد و خربزه رو برداشت تا اونو با چاقو نصف کنه و بخوره. یهو از داخل خربزه صدایی در اومد که دست نگهدار. دست نگهدار پیرزن حاج و واج به اطرافش نگاه کرد. وقتی مطمئن شد که صدا از داخل خربوزه بیرون میاد چاگو رو گوشه گذاشت و به خربوزه خیره موند. از داخل خربوزه دوباره صدایی اومد که آهسته و با دقت خربوزه رو نس آهسته. پیرزن با دقت خربوزه رو نس کرد. یه دفعه چشش به دختر زیبای افتاد که از روشنی و نور صورتش اطرافش روشن شده پیرزن دوباره دو نصف خربوزه رو روی هم گذاشت و اونو برداشت و به خونش برد که دور از مردم بود پیرزن وقتی به خونش رسید دختر از داخل خربوز بیرون اومد و روشنی بی سابقه همه جا رو روشن کرد مردم اطراف که به حال چنین روشنی رو در اون حوالی ندیده بودن به سراغ پیرزن اومدن و گفتن این همه روشنایی است چیه زن پیرزن که نمیخواست کسی از وجود دختر یا همون بمانی خبردار بشه گفت شاید اشتباه کردین من چیزی توی خونم ندارم پیرزن بعد از رفتن مردم دخترک رو توی تقار بزرگی پنهون کرد ولی انگشت از تقار بیرون و دو دوباره خونه پیرزن روشن شد و این بار هم مردم سراغ پیرزن اومدن و اونو تهدید کردند که اگه راستش رو نگه اونو تحویل جلاد شهر میدن تا سرش راستنش جدا کنه پیرزن توی فرصت مناسب سراغ دختر رفت و چاری از اون خواست دخترک گفت به اونها بگو به اسکندر پیغام بدن که دستور بده از در خونه پیرزن تا قصرش رو فرش کنن و دو دست لباس زیبا و نو بفرسته اینجا تا راز این روشنایی رو براتون بگم پیرزن فورا گفته یه دختر رو برای مردم بازگو کرد و اونا هم پیغام رو به اسکندر رسوندن و از در خونه پیرزن تا قصر اسکندر فرش پنج شد و مردم متعجب و کنجکاوانه دو طرف فرش ردیف به ردیف ایستادن در این موقع بمانی از خونه پیرزن بیرون اومد و تا قصر اسکندر جلو رفت و در آنجا مشغول به کار پا کردن قوزه پنبه شد همه مردم و اسکندر و زن و دو فرزندش متعجب به دخترک نگاه میکردن دختر یا بمانی گفت میخوام براتون یک قصه بگم به شرط اینکه تمام درهای قصر رو ببندیم به دستور اسکندر تمام درهای قصر رو بستن و دخترک داستان زندگی خودش رو به جای قصه شروع کرد به گفتن بله همه سراپا گوشی ایستاده بوده زن اسکندر که همون دختر ماهیگیر باشه متوجه ماجرا شد و برای همین هم چند بار خواست سر و صدا را بندزه تا بمانی نتونه قصه زندگیش رو تعریف کنه. اما اسکندر دستور داد که کسی از جاش تکون نخوره و همه ساکت باشد خلاصه قصه بمانی به پایان رسید و حقیقت برای اسکندر معلوم شد اسکندر که از دست زنش سخت، عصبانی و خشمگین شده بود خواست دستور بده جلاد گردنش رو بزنه اما بمانی پادر مینی کرد و گفت به خاطر این دو پسر معصوم از ریختن خون این زن بگذر اسکندر و اسکندر پذیرفت و دستور داد زن به همراه دو فرزندش دور از قصر به زندگی خودشون ادامه بدن و اون وقت دستور داد که پدر و مادر بمانی رو پیدا کنن و به قصر بیارن چند روز بعد هم بمانی به عقد اسکندر در اومد و اونها سالهای سال کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کرد افسانه ایرانی بمانی و اسکندر رو امشب براتون کردم برگرفت از کتاب گل به سنوبر چکر تعلیف و گردابری زندیاد سید ابوالقاسم انجوی شیرازی عمر افسانه ها به اندازه عمر آدمیه افسانه ها باستا ویژگی های زندگی مردمان مختلف و اعتقادات و باورهای اون هاست که در غالبی ساده و روان اما دلنشین بیان میشن عزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح ویراستار افسانی استار افسانه قربانزاده مهران دوستی سلامدار اکبر نیکایی می‌کنند زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود